من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله محمد اللهم اغفر لنا جميع يا ارحم که روایاتی که در باب نیته ذکر شده و مجتمع برحکمه ایت است در عباب متفرقه ای از وسائل ورده یه توی توی مطلق ورده یه مردارشو توی باب نجاسات یه مردارشو توی باب بی یه مردارشو توی احت, محرمو محرمو احت و و این حد و به لحاظ مجموعه آثاری که برای نیته هست یکی نجاست میت است یکی انتفاع به میت است یکی خیل و فروش میت است یکی سلاح مانعیه سلاته به الاخر و عرض شد که در قرآن کریم خود تحریم میت آمده به طور مطلب حرم علیکم المیت و عرض شد که در یک آیه دیگر ازش یعنی تعبیر شده به غیت. و اما یک بسم میت ما اوهل بیهی غیر الله یا ما اوهل لغیر الله به از این یه قسم خصوص در قرآن تحبیش شده به فسق میته و خمر و دم و اینها تحبیش شده به و ما اوهل لغیر الله هم شده ازش به فسق اول اون هم بعدها در اسطلاح ما جزو میته حساب میشه ما اوهل لیکن شاید در قرآن کریم که جدا شده به خاطر این دو اصل یکی رجس هست و یکی هم فسق و از کردی مرحوم صاحب اسرائل قده از این روایات رو آورده در کتاب خودشون و معلوم شد که اهل سنت هم اختلاف بسیار شدیدی دارن توی مسئله چه در خود نیته و چه در مالات حل, حل حیات که این شما عرض می و چه در مسئله جلد نیته که اون از همه مهمتر اون مسئله جلد که روایاتشون متعارض است و باید باید اونا هم اقوالشون متعارض و اما روایاتشون من از کردم که ما دو تا مطلب رو در نظر بگیریم یک در ادهی از تلمات علمای اهل سنت هم آمده که میتهی که نجس است و این احکام رو داره حرامه میتهی است که بعضیشون تحریف مأکول و لحم بعضیشون گفتن میتهی ماله و نفس و سائله تحریف نفس سائله کردن در روایات ما هم همین آمده در روایات اهل سنت نیامده روایت نیسته در اهل سنت فتابه علماشون یا برد یک تابعین هست اما به عنوان روایت از رسول الله نداره اون چی که روایت در رسول الله توش قید ماله و نفسون سائله نداره هیچ چیمه قید رو نبره. اما در فتابه شون هست این مطلعه. و در روایات ما هم نفس سائله هست دو تا عنوان در روایات ما آمده که عنوان نفس سائله که همین عنوان الهی اومناهاده خیلی مشهور شده الان عنوان مشهوری که در کتب ما هست همین نفس سائله یکم عنوان خون ما و دمون خون داشته باشه دیگه توش نداره سائله و غیر سائل توش نداره پس ما در روایات دو تا عنوان داریم اما اون چی که الان در فتوه مشهوره یه عنوانه این یکی دو این که راجع به خود میته هم اجزای میته طبق تصور کلی نسبت است و آیه مبارکه میگه هرمت علیکم همه اجزایشو شامل میشه چون تمام اجزای میته میته اصلا حالا قصدخان باشه گوش باشه کوست باشه هر چی که میخواد باشه که در روایات ما و حتی در فتوای اهل سنت این استثناء در فتاوای اهل سنت هم آمده و اون اینی که استصلا کردن مواردی رو که به اصطلاح تحل حل حیات این عنوان باب سی و پنج از ابواب تحارت و نجاست عنوان به اصطلاح مال لحود افسان سائله یا لحود افسان سائله ما چون در بحث بی هستیم این اناوین رو ببینیم تا بعد ببینیم مسئله بی اهم مختص به کدومی حدیث اولی که خوندیم حدیثی که مرحوم شیخ توسی نقل کرده و دیروز مفصلن مسترش رو سنان درشین ها رو صحبت کردیم باب سی و از عباب نجاسات حدیث شماره یک مرحوم شیخ توسی از مرحوم مفید از صدور از محمد ابن الحسن مراد ابن الولیده ان احمد ابن ادریس که از بزرگان اشائره قومه ان محمد ابن احمد ابن یحیاء که بسیار مرد بزرگاریست کتاب نوادر نبادرالحکمه تعلیف اوست ان احمد ابن الحسن ابن مفضال از اولاد همسان فضال معروفه همه عمرو ابن سعيد مدائنی که اهل مدائنه و لاکن واقفی است فتحی و صده ان مصدقه ابن صدقه ایشون هم مدنی و فتحی مدائنی فتحی و صده عرض کردیم شرح کتاب گذاشتی که تفاهم نکنه انا امار صاباتی انا ابی عبدالله علیه السلام قال سوئل عن الخنفسا و زباب ساسوچکو زباب که مگس است و جرادم که ملخ است و هم که مراد مرچه و ما اشبه دالک ایوانات این طوری یموتو پر بر چه در بر باشه چه زید باشه روغن زیتون سمن روغن و شبهی یعنی شو آب کسیر باشه چه قدیل باشه در این یوشیزا مراد کسیر نه کسیر باشه اینه آب مثل چهار قاله عليه السلام کل ما لیس لهو دمون فلا بست فرض کرده مرحوم شیخ, مفید، شیخ توسی این رو مستقلن در این باب اوبرده و مفسدن هم توی یک باب دیگری دیروز شرحش بذاشت دیگه احتیاج به تکرار نده در این روایت مبارکه چون این روایت نازر است به میته دیگه در این روایت مبارکه فرق به این ده دم و عدم دم کل ما لیس لهو دمون مش کلمه نفس سائله نداره خب این مطلب مجزا نیست این یه نیاز به به هم نداریم حیوانات رو سو کاغذ نگاه میکنه اون ماده سیالانی که در بدنشون هست گاهی اوقات مثلا یه نوع رتوبت حالا خلاصون همین چه یه دونه رطوبیه یه دون رطوبت خاصی در بدن اونها اون اجزاء حیوان رو به همدیگه رفت میشه مثل کر مثلا این شما کرم رو که له میکنید مثلا با یک سنگی توی بدن او خون وجود نداره اون رطوبات بودش و گاهی اوقات نه حیواناتی صولمزیا به بدن باشه داوین های حیوانات تکاملی افتریه که اون رطوبات تبدیل به خون شده ای یک فرایند خاص خودش در کبد و بدن می‌شناسین چطور اون قلب مزه سفید و اون تکثوبات خودش و در ها جریان پیدا میکنه تا وسط قلب در رگ‌ها جریان همه حیوانات اینجور نیستن. ایده حیوانات یه بدنشون که خون جریان داره و اده از حیوانات رطوبت‌های بدنشون خون نیست. مثل خود ملخ مثلا، مثل مرغ مثلا که در مثل مگس. این در حقیقت روایت می‌خواد تقسیم بکنه حیوان رو به دو قسم اساسی. حیوانی که خون داره و حیوانی که خون نداره. خون <تصفيق> یعنی همین جریان. همین جریان. رگ داره در میان رگ ها داره اما اونی که حالتا رتوبت دیگه رگ نداره قلب نداره چبد نداره دستگاه سازنده خون نداره حالا این او در این بحث بعید در این بحث بعید مراد روایات بحث های تیگولوژی باشه فکر نمی کنن. مراد همون مقداري است که آنفر انسان حیوان رو سر به رین قلب و خون یا نداره ظاهرا مراد این باشه و بعیده که مثلا اینها نظر به کتابهای معین یا بحثهای معینی داشته باشه کتابهایی که قبل از این روایت هست میشه احتمالا منشأ باشه به هم هست حالا فرض مثلا این مطلب نقل مضمونی باشه از امار سوابتی مثلا کتابی اسم نام تبا الهیوان یا تبای الهیوان یا الهیوان آن رو دو اسم است منصوب هست به عرستو که ابن بطریق به اصطلاح و همنا او ترجمه کرده به عربی چاپ شده اخیرا من چاپ خوبیش خوبی شده این آید عبد الرحمن بدلی کرده تبا الهیوان خود عرستو اون در اول کتابش در اول کتاب عرستو معیار رو در خون و غیر خون اینجوری میگه میگه حیوانایی که دو پا دارن یا چهار پا دارن خون داره حیوانایی که بیشتر از چهار پا دارن در اصطلاح زیست شناسی هر حیوانی که 6 تا پا به بالا داره حشرهش میگه مثل مگس ما 6 تا دارن دیگه یا انکبوت که یا 6 تا 8 تا اینا اصطلاحاً ایشون معیار در خون اینجوری میگیره حیوانایی که 6 پا و پا و یا همین چیه اسمش هزار پا و اینها این حیوانات این اینها به اصطلاح خون ندارن فاقد خونن اما حیواناتی که دو پا یا چهار پا دارن مثل انسان و بوستاند اینها اینها خون دارن در این کتاب عرصتون ایار اینا آمده فکر میکنم در کتاب های شناسی جدید مطلب عوض شده باشه اینجور نباشه چابه اون سرایند وجودش که قلب و کبد و دستگاه سازنده خون و و امدهش رگ چون خون باید تو رگ‌ها جریان بگیره وجود رطوبت در بدن حیوان امر طبیعیه حساب رطوبت نباشه که راه نمیتونه میره و ظاهرا اصحاب ما هم توجیهی که من دیدم مقداری که من دیدم کلی روی این مسئله حساسیت نشون ندادن به نظر من شاید مسئله قابل حساسیت باشه اینطور نیست که حساسیت نداشته باشه علیه حال از این روایت که روایت به لحاظ سند و بعید هم نیست که شواهد خارجی هم معیدش باشه خلاصه این زبادی است که اعتبار به وجود خونه یعنی هر حیوانی که خون داره حالا کار به جهنده و مهنده نداریم هر حیوانی که خون داره اون به اصطلاح میتش نجسه یا او به عبارت دیگر حالا اگر اهل فلسفه احکام باشه ظاهرا منشأ افونت خوده حیوان هم همون خونه یعنی همچنان که خون در وجود حیوان تا وقتی که زنده هست منشه دقع افونت از بدنه یعنی بدن اگر افونتی پیدا بکنه گلوبول های سفید میگن گلوبول قرمز غیرمز نه هم معینی افونت ها رو از بدن دفت میکنن اگر اون بدن مرد همون خون منشه افونت میشه مثلا منشه افونت جسم و میته همون خونه و به عبارت دیگر معیار در صدق میته همون خونه دقیق و ولذا اگر اون خون در آمد تسکیه میشه پس اگر اون خون در نیامد تسکیه یعنی از دقت کردیم کلمه دم لیس له دم یا له دم در قرآن نیامده توی رواز پیغمبرن نیامده الا ما زکیتون در قرآن آمده و از اون طرف هم تذکیه قطعاً به خروج خونه پس مفروض کلام باید این باشه که حیوانی باشه که خون داره بیرون آمدن خون موجب تذکیه میشه حالا اگر اون خون بیرون نیامد میته میشه دقیقه هم بیرون میدونم حالا اون بعد تصرفات بعدیه خوب دقیق کردین این میخوام نقطه دقت بکنین که شاید مثلا شما بگین آیه مبارکه میته مطلمه خصویت نداره که توش یا روایاتی که ما الان در میته از رسول الله بریم اونا هم محلم هم چطور اهل به این قیده آوردن کل ما لیس لهو دمون فلیس فلا بأس به یا فلا بأس این که توش نداره تو خود قرآن میته هست صده میکنه به مگس مردم صده میکنه میکنه چه قرار میکنه؟ به مرچه مردم صده میکنه میکنه از اون دیدم نفست فائله میفهمیم که اینه این میکنه هم یک خونی داره ولی زنگا حرام نمیکنه همین مشكله میخوام همینو خب بگم همین مشکل همینه از ظواهر عبارت اصحاب هر دو یکی گرفتند با اینکه انصافا اگه انسان دقت بکنه هم هم گرفته اون <تصفيق> هم به قول شما چارپاست دیگه طبق قاعده چارپا هم خود داره دو پا و چارپا اثرن در قاعده لیکن من فکر میکنم از زمانی ارسطو قبل از تو زمان امام ساده و عمار اما بسیار مستوعده که بگیم خود امار ساباتی در نرگان نسته جول امام ساده مثلا تباییت عرصتو کنند بسیار حرف تقدم زمانی تأثیر نداره ارتباط و تأثیر و تأثیر مهمه اون اثبات نمیشه روشن شد مطلب پس بنابراین یک استظهارنمایی در اونجا بوده که میته در مقابل مزکا مزکا, مزکا مزکا یعنی پاک شده پاک شدنش به ذهاب خون تسکیه اینطوری بود دیگه؟ اینطور نبوده تسکیه تز... ولی لذا آمدن گفتن میته ماهی اشکال نداره شون درش ذهاب خون نمیخواه از اون ذهنیت رو وقتی آمد میته در مقابل مزکا مزکا هم یعنی پاک شدن تسکیه اصل به پاک شدن پاک شدن هم در اونجا به خروج خونه پس معناش اینه که اون میته مجلس میشه و منجسه و بالاخره کرد که درش خروج خون داره اما اگه خون نداره فقط است که در بدن او هست ماده چسبنده ظاهرا اسمش هر چقدر بگید ماده مایع است که در وجود او هست که اون میتونه با او حرکت بکنه مثل کرم باشه مثل هزارپا مثل هزار مورچه دیگه قلب و رگ و اینجور چیزها نداره این دیگه برایش صبغ میته نمیکنه چون تاثیرش داره. خون رو که تذکر بشه پس علاوه این در این روایت مبارکه که از عمار ثاباتی نقل شده از کردم به لحاظ سند در سند این روایت در متن روایت کل ما لیس له جن لا بحث به فلا این یک رتا. روایت دیگری که ما داریم در این باره روایت شماره سه از همین بابه که مرحوم شیخ توسی رحمه الله البته این دو تا این دو تا روایت یعنی این روایتی که ما تا حالا اینجا خوندیم این روایت مبارکه از انفرادات مرحوم شیخ توسیه نه صدوق نقل کرده نه مرحوم شیخ کلینی این حدیث سوم هم از انفرادات شیخ توسیه و به اسنادی اسناد مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ صدق شیخ طوسی ابن حسین ابن سعید سند ایشان به حسین سعید بدیه وجای بحث نیست ابن سنان ابن سنان در اینجا محمد ابن سنان سابقا تو گفتید که درباره حسین سعید مقدار زیادی از میراث های محمد ابن سنان و کرده. در هر کلا در هم اصلا بحث زیاد خب حتی تعبیر به کذاب هم از ایشان شده در هر حال اجمالا به نظر ما محمد ابن سنان از خط قلمه انصافش و نمیشه انکار کرد نسبت به روایاتش باید یه مقدار تعمل کرد اما این که بگیم مثلا کذاب است و قطعا قوادش میشه نه کذاب بون منام نیست یه مقدار باعث باید شده بایدش تعمل کرد از ایشون نغر شده نمیدونم حالا اونم تا چه مقدار كه اون که اون چی که هم براتون نغرب کردم هم حکایت نیست وجاده بوده از بازار کتاب قریده مثل کتاب ابن موسکان رو قفصه ان ابن از کتابش لذا باید روی میراس های محمد بن سلام تعمل کرد نه کرد این تایی باید منخفید عنه ابن مسکان ابن که توی بحث ما داره قال قال ابو عبدالله علیه السلام البته این بحث است که ابن مسکان از امام صادق حدیث نقله میکنه یعنی ایشان حالا گاهی میگن بخاطر احترام امام گاهی میگن ایشون داشته سرمایدار بوده به سلام ما حالا نه سرمایدار انو داشته... ندیم بودیمی سای اگر کش عین مبرن سر دورت مسادره بشون سند حالا به هر حال این سند شبهه ارسال بود قال قال ابو عبدالله علیه السلام کلو شیعه یسقط و فلبه له دمون مثل عقاره و الخنافس و اشباه داله اقرب سوسکو و این فلا بر این روایت مبارکه هم که سندش به خاطر احتمال ارسال منجهده و وجود ابن سنام منجهده اخراه که می اشکال داره و طبعا از انفرادات مرحوم شیخ طوسی هم هست این هم ممکنه سیگه اشکال بشه این هم درش عنوان دم آمده یک نفس سائله این تو نیامده. عنوانش عنوان دم. بله در این روایت مبارکی یک مشکل داره و اون کلمه اقاره درش آمده اقرم مشکلش هم اینه که لفظ اغرب در بعض از غرارات آماده که نه اونم نجس میکنه بعضی هم داره نه در خود اغرب گیر داره ولی غیر از مثال یعنی این رو باید دو نکته درش محل تأمونه یکی کوبرا کوبرا عنوان لیسلهودم اونه لیسلهو نفسون سائله این یکی دو سغرا یک سغراش هم اغربه اینه اغرب هم گیر داره اون رسولاز رو باید گوشن این یک تاریخ از خداوند پس ما دو تا روایت داریم هر دو از منکرادات شیخ طوسی مصدر هر دو الحمدلله روشن شد اینکه داوود حسین سعید یکی نواب در کتاب نواب در از کتاب اعمال ثوابتی گرفته کتاب حسین سعید ابن مسکان گرفته از ابن سنان اون شگینی در این دو تا روایت عنوان لیث دم آمد. در قبال این دو تا روایت یک تاریخ دومی دو هم داریم در اون دوم روایتی ایسی عنوان نفس سائله آمده و اون حدیث شماره دوست داره و انهو ارس کردن و انهو رو به محمد ابن الحسن نزنیتون اون حدیث اول داره محمد ابن الحسن انه عن المفید عن شماره دو داره و انهو من حتی به ارزاییم که مقامات حسن که خب سه زمیر انه رو به شیخ زن چون نه اسم محمد بن حسن هست یعنی انه شیخ توسی رو سرن از کردن. اون طریقه ی صاحب وسائل این است که وقتی اسمی کسی رو آورد، حدیث بعدی یه بر اون دیگه اسم رو نمیدنه یعنی وقتی گفت محمد بن حسن بعد از او هرچی میبون محمد بن حسن نمیدن لذا زمیر انهو به مفید برمیگرده وقتی گفت و انهو یعنی محمد ابن الحسان انهو اینطوری به معنا بکنید یعنی ان المفید تمام اینجوری... همه واسایی آقایونی آه که اهل اطلاع نیستن بله جلگ مرخی خب واضحشون وارد می کن کارشون و انهو نقرد کردید ان احمد ابن محمد ارز احمد ابن محمد در اینجا مراد پسر ابن الولیده چون مرحوم شیخ مفید از پسر ابن الولید نهر میکنه. و توصیقم نشده انا امیر پدر ایشان ابن که بسیار مزرگانه انا احمد ابن ادریس از مزرگان قوم احمد ابن ادریس ابو علی اشعری از مشایق کلی من یک توضیح رو به طور کلی عرضه کنم ما ارز کردیم رجال رو فقط به اسم معنا نکنم مثل فلان ام فلان سقل زریف. نه این نیست این... اصلا رجال این سرد خودش یک تاریخه یک جغرافیات هر دو. یعنی خاص این مرحوم شیخ توسی از توس آمدن به طرف عراق. نمی‌دونیم احتمالاً ایشون در توس هم درس خواندن، و در این دفعه آمدن عراق درس خوانده باشه. بلکه مثلا ایشون از توس که آمدن، آیا به قم آمدن؟ نه. به ری آمدن؟ نه. مثلا آیا در اهواز از طریق اهواز آمدن؟ آیا در این شهرها بزرگان علمای شیعه بوده؟ در خود مثلا علمای شیعه پیشون از علمای قوم اخذ حدیث کرده باشه الان در آثار شیخ توسی هیچی از اینا نیست یعنی ما الان مشایخ شیخ توصی رو منحصر در علمای بردار میدونیم خوب دکت پرمونیم هیچ وقت سند تنها رو بررسی نکنیم مثلا مرحوم شیخ کلیمی پیشون هم مشایخ قومی داره هم مشایخ اهل ری داره که زیادن یا به اسطلاع تهرانی راضی به قدم اون زمان. اهل ری داره ایشون از مشایخ بغداد داره ایشون از مشایخ کوفه داره اما فضل اگه در اون زمان مشایخی بابنسان در مص مرحوم کلین نداره یعنی به مص حدود کار مرحوم کلینی برای ما واضحه حدود کار مرحوم شیخ توصی برای ما واضح پس شیخ توصی مسادر که داره قوم... بغدادیه و این بحث پیش میاد ایشون گاهی اوقات مثلا کتابی رو نه که ازش مال کوفه است. کتابی رو نه که ازش مال قم است. خب ایشان که بغدادیه از کجا اون کتاب رو نه؟ سوال میاد دیگه. وقتی ذکر طریق میکنه این ذکر طریق برای بیان وصول به کتابه. یعنی مرحوم شیخ توصی، میگه من از استاد مفیل بودم. ایشان هم بغدادیه. مرحوم شیخ مفیل از پسر ابن الولی میگه. خب ایشان قمیه. واسطه انتقال به قم ایشانه. ایشان هم از پدرش اونم قمیه. بیشون هم از مرحوم ابن ادریس احمد ابن ادریس ایشان هم قومیه اش، از اشاره قومی ایشان هم از کتاب نوادار الحکم یعنی با این ترتیب معلوم شد که انتشار این کتاب در برداد توسط پسر ادن البری گیره ولی ازا این یک راهیست حالا غیر از اون راهی که من عرض کردم یه راه این که مثلا پدر ایشان جزو بزرگان یه که مثلا مرحوم مفید اعتماد کرده این هم یه راه دیگری. یعنی برای نتیجه این راه ممکن اش ما اثبات وثاقت احمد رو نکنیم اما اثبات صحت نسخه رو میتونیم بکنیم این دو تا رو با هم دیگه فرق بذاریم و این رو ما مفصلا توضیح دادیم عرض کردیم چون در این حوزه متعارف نیست از کردیم اثبات وثاقت راوی یک بحث اثبات صحت نسخه بحث دیگه ایه اون اثبات وثاقت راوی اصطلاحاً ما بهش رجال اثبات صحت مستقیم استران جون فهره لذا علمای ما هم در رجال می نوشتن هم در فهره پس این حدیث و مرحوم شیخ توسی توسط اصطالش توسط پسید ولید از, از احمد ابن ابریس از کتاب نوادر حکم نرمی کرده به قطعه مرحوم نوادر حکم از عبی جعفر گرفته که احتمالا برقی باشه ایشان از پدرش گرفته او هم از هفت سبن گرفته این هفت سبن قیاس بغدادیه و این نشون میده که مرحوم شیخ توسی میتوانسته در بغداد از مشایخ بغداد همین کتاب نقل بکنه یعنی این دور زده از مشایخش ارده به قوم از قوم باز آمان در بغداد چون اصل کتاب بغدادیه لکن این کتاب بغدادیه یعنی سند و الان این سند داره با شما صحبت می‌کنه فقط دنبال افس نرید که مرحوم صاحب نوادر از اهل اح... جعفر ابو جعفر در این طبقه هم به احمد بن محمد بن عیسای اشعری گفته میشه از اشعاری قومه از رؤسای قومه در سیاسی قومه. و هم به احمد بن محمد بن خالد بقی هر دو ابو جعفر هم هر دو احمدن هر دو هم احمد بن محمد اسم خودشونو پدرشونو کویه‌شونو مثل احمد و در یک طالقه البته فرقشون قاله مغلوبه مرحومه اشعریونی که از خوب بیرون شد احمد برقی رو فرقشون اینه به الله اسمشون و پدرشون و کنیشون مثل همه لولا دروای سیست البته حال و هردشون رو از پدرشون نقل میکنن اما اونی که بیشتر از پدر نقل میکنه برقیه ولذا به ذهن ما میاد در اینجا ابی جعفر برقی باشه عبی هم محمد بن خالد برقی ایشان اساسا اهل کوفه است. با مهاجرت فرمودن به قوم بعد از هجرت در وقت هجرت به قم ایده از کتب عراق رو ایشون با خودشون قم بردن زیاد حتی کتاب کتابی نه بی عمر، کتابان حفصه بختری، حفصه نقیاص مادر و. و غیره ایشان مقدار زیادی از این کتاب‌ها رو با خودشون قم بردن پس این حدیث منشأش کتابی در بغداد اول حفصه نقیاص و قاضی بوده در بغداد بعد هم ساکن کوفه شده 13 14 سالی اواخر عمرش و ایشان از بین اهل سنت فوق العاده مشهوره یعنی مرد بزرگواری است معروفه با اینکه قاضی بوده خیلی به جلالت شخصش و خاصن میگن یعنی خیلی قائل به استقلاله بقول از بوده حتی هارون مطالبه رو خاصی یا مادرش عمر موسیا مقابله میکرد ایستادگی کرد به روی هارون همین حفظه سیاست آن اجر شد البته خودش هم یعنی خود نظر علمی معروفه اینطور در شهر حلیشنشتن گفت روز ما ولیط القوا یا ما ولیتارا هر دو جور قرانیش درستن به سریه ولیه هم ولیه من متصدیه قزون نشدم الا حلت لین میته یعنی اینقدر فشار مالی هم وارد شد که مجبور شدم برم قاضی بشن این چیزی که دین و اینها من زیاد شد در یک اداره پیشونده گفت من سه نفر بودم بزرگان فقهای اینا رو هارون هزار کرد برای قاضی شدن یکی اون عبد الله بن ادریس انچستر بود او وقتی که وارد شد خودش داشت به مثل آدم مرش شربت آدم افلیجانی گفتم ولی کرد مثل آدم که مفلوش باشه هارون بوی که دیگه کار نمیگه دررفته پول نمیز زوار دررفته دو دومی هم که وکی بود اون از صوقای معروف اهلسونه اون انگوش اگر رو چشمشو گفت من یک سال خدا شایده با این چیزی نیمیگیم با انگوشت نه با چشم وازی گفت خب این کم کوره این <تصفيق> هم بگش بکنی یکی شرسته کم کور این بیچاره قبول که خاضی باشه این هم گفت که ما قبل طول قضا حتی ما ولی طول قضا لا حلت لی المیته انا هفت سبن قیاس پیش ما توصیق سریح نداره پیش احرسانت داره خیل مفصل در کتاب تاریخ بغداد چه و حالش رو داره مرحوم شیخ درا عامی الا ان کتابه او از این عبارت مرحوم شیخ توصیفش رو در آورده و مرحوم نجاشی کتاب ایشان رو هم توصیف کرده ایشان از امام صالح یک مجموعه ی دفتری به اصطلاح کتابی در حدود 170 حدیث نوشت من درصف این حدیث او شده برو این هم وصف این کتاب هفصل نقیاست و کتابی ایشان ظاهرا متفرقه بوده در یک باب واحد نبوده مجموعه نوشتاری به اصاشیعه از ایشان از امام صادق نقل کرده امدتی من به همین مقدار اختباه می کنم لکن در کتب اهل سنه در کتاب تاریخ بغداد آمده که هر اخلا کتاب نداشته و من نیدم از آقایان ما حتی مثل مرحومه عایشه در قاموس با این تریشن عبارت معظم یعنی این نه همه عبارت این به از عبارت تاریخ بغداد رو آورده این قسمت رو نه آورده تصادفا اگه در تاریخ بغداد چیزی به درد ما میخوره همین قسمتش همین است که ایشا نه اوورده. این به درد ما میخوره چون اگر این مطلب درست باشه اصلا اصل اسنادی کتاب به ایشان محلش ابهام میشه و شون این کتاب حق در اجازات اصحاب ما موجود بوده احتمالاً این مثلا فرض کن پسرش عمر عمر بن اون اونش را کرده الان در کتاب و تاریخ و بغداد داره که ایشون اصلا هیچ کتاب نداشته همه در از حبس حدیث میگفته از اون ور اصحاب ما این کتاب را هم ویجا نسبت داده این یک نکته این نکته شون الان عرض کردم حالا وارد این بحث بشم چون ندیدم که حالا ایشون از راه رجالی ها این بحثی نوشته باشن این بحث رو من مفرح میکنم مرحوم شیخ در تلحط ابن زیدم داره آمیون الا ان کتابهو معتمند در این حفظ ابن قیاسم داره کتابهو معتمند بحثی شده بین رجالی ها که آیا کتابهو معتمند دلالت برای وساقت میکنه یا نه مشهور فهمیدن وساقتش رو. تو میگن اعتماد کتاب غیر از این معنا نداره. لیکن یادم میاده وقتی در, در درست مرحوم اصلا حال نمیدارم تازی کتاب چیزیشان معجم دیشب نگاه نکردم. در درست ایشانگاهی اشکال میکردن که تلازمی ما بین اعتماد بر کتاب به خاطر قرائن و بین وساقت خود مؤلف کتاب نیست حالا این اشکال که همون اشکال معروف در کتاب با اطلاع رو قرائن نظر اشکالی که ایشان من در درست از تو ذهنم هست اما این دیشب نگاه نکردم در هسته بود ریاض در ترجمه ایشان در معجم یهو نگا کن چه چیزی دیگه نوشته رو کلماتش آشفتگی رو داری کارتون دادم علاقم چه چیزی دیگه نوتلی اونطوری تبعث دادم عرض کنم که فقط چیزی که هست خوب دقت بکنید به نظر من این عبارت کتابه و معتمد اون که ما همین شیء توصیف داره اگر بخواد توصیف بشه نکته دیگیری داره که اون توجه نکردم به نظر من بود اون کار کرد خوب دقت بکنید ما باید ببینیم نظر خود خودوند بررسی عبارت مرحوم شیف که کتابه ها مؤتناده نینیچی اینو خوب به قصد بکنیم اولا بدانید که ما اگر میخواهیم از عبارت شیخ استفاده کنیم در وقتی میتونیم استفاده بکنیم که شیخ مطلبی رو بگه که ما نمیدانیم و وجهی هم بر اونه بریم که بگیم شهادت شیخه. همین که بگم قول رجالی حجت یا نه مثلا اگر شیخ گفت روا و نو و محمد خودمون خب داریم میگیم 10 تا رو داشتون جابر دیگه نکته خاصی بر ما نداریم این دارم خوب دقت بکنید ببینید کلام رجالی کجاش بر ما تعبد داره کجاش تعبود نداره خیلی که مرحوم شیخ فرمود در کتابه هم و معتمد خوب دقت بکنید اگر نظر شیخ توصی کلامی است ایشون از مشایخ بغداد مشایق از مشایخ ناردن مثلا مشایخ محسن رو کتاب در اعتماد میکنیم. اون کلام مشایخ به ما نرسید اون دقیق کردیم اون کلام مشایخ به ما نرسیده اون چه که به ما رسیده کلام شیخ توسی است تو خلاصه کلام مشایخه. اگر عبارت شیخ توسی مرادش این باشه این توسید و این ارزش داره یعنی شیخ توسی برای ما مطلبی رو نقل کرده که ما در اختیار نداریم اگر بخواییم بشتارستیم فقط شیخ توسی است مشایخ، مشایخ بغداد مقصد اده از مشایخی ایشون خودشون دوزو حدیث چناس بسیار بزرگ هست مثل ابن غذایری مثل مرحوم ابن عبدون اینا اصلا بزرگان حدیث هست ایشون از مشایخ بغداد نقل کرده اونا از مشایخ خودشون که کتاب آقای هفت ابن قیاس قابل اعتماده انصافش نقل مشایخ برای اعتماد از کتاب بدون اینکه که قید بزنن ملازمه و عرفی با رو بابتابن. چون وثاقت برای ما هیچ اثری نداره حالا وثاقت یک چون... این است که کلمه ثقه توش ادالتم خابی بیان شد حالا تو که ادالت باش یا نباشه ما از وثاقت حفظ نریاز. قیاس از استفاده کتاب چی فایده‌ای نداره چی کار ما می‌کنیم کتاب از حفظ ابن قیاس نه فصائح نه واس ما می‌خویم که ما می‌خویم طلا بدهیم ما می‌خویم قضاوت هیچ کاری الان از شؤونه وثاقت و عدالت برای حفظ ابن مترتب نمی‌شه جز این که بر کتابش، این دیگه نیست دیگه الان برای ما برای مثل توسی در زمان شیط هیچ اثری برای وساقت هفت سبن قیاس نیست الا اعتماد بر کتاب و ایشان از مشایخ برداد نرمونتن که بر کتابش اعتماد کردن این, این یک احتمال در عباره یک احتمال دیگه که مرادش یک چیز باشه کتاب هون معتمدان یعنی اصحاب ما روایاتو رو عوردن اگر مراد الشیخ این باشه این وجدانی خود نشاظ بشه چه اثر داره؟ شون در کافی رواتبش هست. البته در کافی رواتبش هست، در فتاوای اصفه هست. در کتب یعنی در کتب فقهی ما هم عین عبارات مثلا در همین مسئله فارسی در فقه حرزا نفس سائله آورده. حفص بن بیاس تعبیر به نفس سائله امار سابه کرده، امار الصاغه تعبیر به دم کرده. یک کتاب فقه حرزا میشه عبارات حفص بن پس این معناش این هست که اصحاب ما بزرگان ما مثل هم کلینی مرحوم خود شیخ توسی مرحوم صدو به روایات حفص ابن قیاس عمل کرده. پس مراد ش... خوب دقت کنید مراد شیخ توسی از این عبارت کتابه مؤتمدو یعنی کتابی ایشان در کتب حدیثی و فتاو و روایات ایشان پیش اصحاب ما حفویانی ما هست. خوب دقت این مطلب در دقت نشده من دارم اشاره میکنم مرز بین وجدان و تعبد را همیشه با هم خلف نکنید اگر کلام بزرگان بغداد و مشایخ بغداد باشه و شهادت اونها ولو شهاده شد این مقدار باشه کتاب هون معتمند مثلا مورد شهادت معداد شهادت اعتماد بر کتاب اگر این باشه این تعبود اگر تعبود شد خب تعبود می کنیم بزرگان بغداد گفتن قابل اعتماد و این یه نوبت ماست آره یک فقیهی ممکن است از این تعبود ملازم شد. بفهمه، بفهمه؟ یکی نفهم اون بحث دیگه مورد تعبود اعتماد بر کتابه خلق نشه آیا وساقت در بیا یا اون بحث دوگمیه چون ملازم است دیگه درست شد اما اگر مراری ایشان از کتاب و یعنی روایات ایشان در کتاب اصحاب موجوده روایات ایشان اصحاب بهش حتوا دادن اگر مراد شیخ اینه این وجدانی ماست این که تعبد نیست که خب خودایی می‌بینیم به وجدان این دیگه تعبد نذاره ما بین وجدان داریم می‌بینیم در کتاب کافی رو هست در تغیر واسش هست اصحاب ما به ترتیب رو فتازه یه نهت به کلام شیخ نداره این دیگه نوبتی به تعبد نمی‌رسه کتاب معتمدون میشه ابا اتن اخرا که شما نگاه بکنیم از رو واسش نقل که افتام کردن تو این مطلب شیخ رجدانی ماست نیازی به کلام شیخ نداره خود ما هم درد پس اگر معنای اول باشه به درد می خوره. اگر معنای دوم باشه به درد نمی خوره وقت در اینجا داره انجعفر بن محمد ان علیه السلام قال لا يفسد المائه الا ما کاند لهو نفسون سائله داشتیم این حالا یا میتونیم تشخیص بدیم می یا ندی مجمل می‌شینیم چه توصی قبول خوب. من از کردم این حدیث رو از ابی این به این متن یعنی از این کتاب مرحوم شیخ طوسی داره. بله. شماره 5. مرحوم کلینی هم داره. یک کلینی این جور ده محمد بن یحیی رفعه عن ابی عبدالله احتمالا همین باشه. احتمالا همین باشه احتمال میدیم ای ایده روایت دیگری باشه. این معناش چیه؟ معناش این است که مرحوم شیخ کلینی از کتاب استادش محمد زیحیا گرفته. با اینکه نوادر الحکمه پیشش بوده، به نوادر مراجعه نکرده. یا احتمالاً مراد این باشه که شاید در نسخه نوادر ایشان نبوده. چون اون نسخه نوادر الحکمه شیخ احمد بن محمد باقر بن حالا علیار مرحوم کلینی این رو به این عنوان چون کتاب جامعی محمد بن یحیی و استاد کلین کتاب اینو من جامعه داشته شاید در کتاب محمد بن یحیی اینجور بوده و ان ابی عبدالله قال لا یفت در ما الا ما کانت لهو نفسون سائله به احتمال بسیار قریه اصلش همین کتاب هفته نقیاس باشه البته ما الان دیگه نمیفهمدیم چون خیلی تحلیل دقیق بودیم چرا کلینی از نواد رو حکمه و درست نقل نکرده به صورت مرسله برداشتیم دورده بعدن در نسخه ایشان انعبی الله بوده در نسخه نوادر انعبی عبدالله انعبیه بوده ما باقی هم. اما فتوای اصحاب رو شد خبا این هم عجب بوده باره اله یوم نهادا پس دو تا عباره شد لهو دم که لهو دم دو تا رو باید داشت و لهو نفسان سائله شاید یکی باشه ما رو باید هفته مقیاس باشه این هم سندش بد نیست میشه قبول کرد سندش یعنی گیره سند رجالی داره اما میشه به شو صحبه میکرد پس اولان شد دو تو دوتا اونوار لهو دمان لهو نفسون سائله فردانش ما... <تصفح> چرا صلی اللہ علیه این همون کاری که از خام کردن گفتن در و نفس سائلی یکیه بگذاری من فردانش